بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين يجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قَضَ الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم بدران عزيز الدرس رقم يوم با شما در نظر گرفتین در رابطه با وضعیت و تشریعی کشور معشوماست خصوصا در مقتعی که بعد از آمدن امریکایی ها به این سرزمین است چون یورش امریکایی ها تهاجم امریکایی ها تنها یک تهاجم یک یورش یک حمله اسکری نیست این یک حمله جا جانبه است که همه یا اکثر جوانب زندگی واشندگان کشور را دربار گرفته ای جنگ هم جنگ اسکری است ای جنگ هم جنگ فکری است ای جنگ هم جنگ تشریعی و تقنینی است ای جنگ هم جنگ تعلیمی و تربیتی است جنگ هم جنگ... جنگ هم باد اخلاقی و روانی دارد و دشمن بر پیش بردن همه ابعاد ای جنگ هزارها موسسر با خود آورده متاسفانه که ما شما از تاثیر این موسسات و از بودنشان و از گوناگونی کارهایشان و از فراگیری ابعاد مختلف زندگی ما توسط اینها آفل هستیم دشمن تنها تانکتوب و بمب و تیاره و اسکر و دوربین و توفنگ خود با خود ناورده دشمن هزار ها مستسر با خود آورده دشمن ده هزار متخصص فکری، تعلیمی، اعلامی حقوقی، قانونی، سیاسی، اجتماعی و متخصصین جوانب دیگر زندگی بشری را با خود آورده شما فقط یک مثال خدمت شما عرض میکن و متوجه شوید که حجم این معصصات و تعداد این معصصات چه قدر است؟ چند سال پیش اگر شما متوجه شده باشین امون کسی که امروز در مولیسی جرگه است رمضان بشردوست این وزیر پلان بود در یک دوره کرزه وزیر پلان بود و میخواست یک کار را بکنه که هم یک وجهات بین برای خود در ذهن مردم داشته باشه در بین مردم و ملات خود چون ایادن برنامه های بعدی دارد تا خود را به حیث یک رئیس جمهور و به حیث یک امیر المومنین به حیث یک شخصیت مسلح اجتماعی و فکری و به حیث یک پیشوا، به حیث یک مندلهای افغانستان خود مطرح کند. بس چه کار کرد؟ در یک روز دو هزار مؤسسه غربی را لغوا کرد شما باید دارن که در یک روز دو هزار مؤسسه را لغوا کرد از کار منا کرد دو هزار مؤسسه اما که در یک روز دو هزارش از کار منه کرد شما چی فکر میکنید اموی که امویی که مانده او چند هزار باشد بیش از چار هزار مؤسسه امروز در افغانستان در مجالات مختلف زندگی افغانستان یا ها مسروف کار هستند هم در باید اقتصادی هم در باید تقنینی و تشریعی هم در باید اخلاقی هم در باید فکری و فرهنگی هم در باید عسکری، هم در باید سیاسی و دپلماتیک هم در باید اجتماعی و تنظیم اجتماع بر اساسات غربی هم در باید نشر مفاهم فلسفه غرب از قبیل دموکراسی سیکولارزم و مفاهم وارد شده دیگر اینها هزارها مؤسسه را با خود آوردند رمضان دوست در یک روز دو هزار ماسی زییننا رو لغوا کرد دو روز بعد خودش لغوا شد از وزارت دور شد چون این حکومت حکومت افغان ها نیست این افغان ها نه اوورده افغانها جور نکرده حکومت حکومتی است که امریکا ای را جور کرده و امریکا تمویلش میکنه امریکا مشهوریتشه بررسیت میشناساست امریکا مصریفشن میده امریکا به دستش توفنگ و پرده امریکا معاشش میده وزارایش امریکا تعیین میکنه رئیس جمهورش امریکا تعین میکنه برنامه هایش امریکا میسازه نتانست که رمزان بشر دوست نتانست که وزارت خود را حفظ و یا معسسات را لاغ بکنه چون امروز این حکومت حکومت معسسات غربی است حکومت کشورهای غربی است حدود پنجا و کشور جهان داری حکومت صحیح مستن مشارکت دارن داری و هر حکومتش به صدها معسسات و به صدها ارگان فکری و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را ایجاد کرده و افکار خود را نظریات خود را برنامه های خود را اجنده های خود را از طریق امی معسسات و امی اشخاص که با خود آوردن یا اینجا در بین افغان ها ام اشخاص را کار قرار دادن از طریق اینها تطبیق کنن بود ابعاد بود قانونی چون قوانین او قالب هست که اجتماع را قانون که هر طور ساخته شد مردم مکلف هستن که قوانین عمل کنن و اگر طبقی قوانین عمل نکنن از دیدگاه حکومت و نظام این مردم مجرم شمرده میشن وقتی که مجرم شمرده شدن حکومت به خود حق میته که اینا رو تأدیب کنن اینا رو جزا بدن اینا رو در زندان بیافتن همراشون محاسبه بکنن چون مخالفت حکومت را کردن مخالفت نظام را کردن مخالفت قانون را کردن دیگه قوانین و رسمان های است و بندهای است و زولانه های است که از طرف استعمارگران توسط اینها ملت‌ها را بسته می‌کنند ملت‌ها را که بسته می‌کنند ملت‌ها را که از کردن بعضی کارها واهمه دارند ما نمی‌کنند و بر بعضی کارها اینها را مکلف می‌سازند مجبورشان می‌سازند و کارها را بکنند تغییر را در زندگی خود بیاورند اونها همه این کارها را توسط قوانین می‌کند اول قوانینشان را تدبین وزیعت قانونی امو کشور اشغال شده را تبدیل میده بر افغانستان هم که اینها آمدن اول وزیعت قانونی افغانستان را تبدیل کردن یک قانون اساسی را بر افغان ها ساختن که زندگی فکری، زندگی دینی، زندگی سیاسی، زندگی تشریعی، تقنینی، قضایی، عدلی زندگی تعليمی، زندگی سیاسی، دیپلماتیک و تعامل با کشورها زندگی اخلاقی و همه ابعاد زندگی افغان ها را تنظیم می کنند. غرب این موضوع را درک کرده که تو وقتی که افغان ها از درون تغییر نیابند فکرشان تغییر داده نشود، نظریاتشان تغییر داده نشود تعالیم و تربیه و شیوه تربیهشان تغییر داده نشود عقیدهشان تغییر داده نشود اینها از مبارزه و از جهاد و قتال از مقاومت دست نمیکشن و تاریخان بر همین شاهد است اگر انگلیس ها آمدن افغان ها علیه اونها قیام کردن و را از این جران اگر اتحاد شوروی آمد قوی کشور نظامی جهان با صدها هزار میروه اینجا آمدن، تشور را اشغال کردن، پیشرفته ترین وسائل جنگی خود را در اینجا استعمال کردن، لیکن نتیجه شکست اونها بوده، آزادی افغانستان. امریکایی هم آمدن، امروز میبرین اینها رونده هستن، شکست خوردن، میرن. لیکن اینها درک می که ما باید اطور یک وزیعت قانونی را در اینجا ایجاد کنیم که اگر ما بر باز هم همین وضعیت قانونی اینجا برقرار بماند همین نظام به یک شکلی تداوم پیدا مکند ما بخاطر اونها قانون اساسی رو اولتر جور کردن و بعدش قوانین دیگر دار قوانین جزایی هستن، قوانین مدنی هستن، قوانین اجتماعی مدنی هست، قوانین مطبوعات است، قوانین تجارت است، قوانین اقتصادی است یا انوای دیگر از قوانین است، ای را به اون میارها و به اون اصاسات جور کردن که مجتمع ما را، مردم ما را، کشور ما را تابع غربی ها می سازد. مردم باید میارهای غربی را قبول کنند در هر ساحه زندگی خود. ای که قانون اساسی چی است؟ و امیر واقع واقعا افغان ها جور کردن یا ای را امریکایی ها جور کردن؟ دائی موضوع وطرگر می زنید یه قانون اصاسی اسلامی است یا نیست؟ اگر اسلامی است چرا قبولش ندارد؟ چرا برخلافی و می جنگی؟ چرا به ای قانون تسلیم نمی شیم؟ اگر ناسلامی نا است چرا نا اسلامی است؟ اگر ای قانون قانون کفری است؟ دلائل یعزید چی است؟ چرا ای قانون, قانون کفر است؟ در کجاوها کفر است کوم مواد عزی مواد کفریاس دای ان شاء الله د ادامه درسو ان شاء خدمت شما معلومات وړاندې میکنین لیکن امروز دای موضوع کومه کی خدمت شما تفصیل عرض میکنیم که خود قوانین در اسلام چه جایگاهی داره؟ آیا اسلام دینی است که حتماً باید از خود قانون داشته باشه؟ یا خیر است قوانینی را که هر کسی از هر جا و هر مدرک و از هر منبع و مصدر برای ما درست میکنه؟ هیچ پروانه داره؟ ما نماز خود را بخانیم، روزی خود را بگیریم، حج خود را بکنیم، نوافل خود را بخانیم، رو به قبله استاد شاییم، لنگی بسر کنیم، بیشی خود را دراز کنیم، هیچ نیست دیگه را که ه و مطابقه هر سیستم و هر مذهب و فکر برای ما درست میکنند در مورد شیش حساسیتی نداشته باشد خود دین اسلام در مورد قوانین چی میگه؟ آیا نظام که قوانینش غربی است یا قوانینش امریکایی است یا قوانینش اسلامی نیست او نظام نظام اسلامی گفتم بفتمیتانی؟ آیا حکومت اسلامی گفته میدونیم که حاکمیت در اونجا از اسلام نباشه حاکمیت در اونجا از مردم باشه حاکمیت در اونجا از یک جهت اجنبی دیگه باشه حاکمیت در اونجا از وحی نباشه حاکمیت در اونجا از قرآن و سنت نباشه لا خود لفظ حکومت را اگر ببینیم لفظ حکومت از حاکمیت گرفته شده حاکم کی باشه حکم و فیصله در دست کی باشه طبق رزامندی و طبق خواهش کی باشه زندگی مردم را کی تنظیم کنه خود لفظ نظام را اگر ببینیم از تنظیم است زندگی را کی تنظیم کنه اسلام تنظیم کنه هوا هواس مردم تنظیم کنه خواهشات مردم تنظیم کنن رای اکثریت تنظیم کنن امریکا تنظیم کنن انگلیس تنظیم کنن جرگه قومی و مشوره های ولوسی تنظیم کنن کی تنظیم کنن؟ هر جهت که زندگی مردم را تنظیم میکنن ابعاد مختلف عدلی و قضایی و تقنینی و تشریعی مردم را تنظیم میکنن نظام هم عظمی اگر او اسلام بود نظام اسلامی وہ حکومت اسلامی اگر حاکمیت از اسلام نہ بود حکم فیصل از اسلام نہ بود حکم فیصل از ڈیموکریسی بود حکم فیصل از سکولرازم بود حکم فیصل از ملل متحد بود حکم فیصل از اکثریت بود وہ نظام اسلامی شدا نمیتانا وہ حکومت اسلامی تمام مردومے او نماز بخوانند، به حج بروند، اجازه روز داشتن را داشته باشند، ریش های خود را بمانند، لنگی بسر کنند، بازم اون نظام اسلامی میشه و اون نو حکومت اسلامی میشه. اگر در هر قریا ده ها مسجد را بنا کنند، اون نظام اسلامی نمیشه و حکومت اسلامی نمیشه. چون مجتمع را، انسانها را که کسی تنظیم میکنه، و فیسله و حکم را که بر کدام اساس می او اسلامی نیست. تا وقتی که تنظیم کننده جهت منظم جامعه اسلامی نباشد، به مسلمان بودن باشندگان یک سرزمین نظام اسلامی نمی اگر ایتر می بود در لندن هم مردم نماز می کنن. در لندن هم مردم ریش دارند. در لندن هم مردم مسجد بنامه کنند. در امریکا مردم مسجد دارند. در فلسطین اشغالی در، که میوز این اسرائیل میگویندش، در اونجا مردم مسجد دارند. پس اسرائیل هم نظام اسلامی باشد، لندن هم نظام اسلامی باشد، امریکا هم نظام اسلامی باشد. مردم از اروپا هم به حج میروند. مردم اونجا هم آزادی لباس دارن. هرقم که میپوششن. تا با یک حدید. نه، کسی که نظام را تعیین میکنه، کسی که حق فیصله را داره، کسی که زندگی مردم را بر میارهای خود استوار می سازه، او اسلامی نیست. بنابراین اون نظام هم در اونجا اسلامی نیست. اگر در افغانستان نظام را کسی دیگه درست کنه، قانون را یک کسی دیگه بر ما بیاره، مستر قانون ما وحی نباشه، حکم از اکثریت باشه، حاکمیت حق مردم باشه حق اله نباشه در کنار قوانین شرعی قوانین دیگری وجود داشته باشه که قوانین غیر اسلامی و غیر شرعی باشه و بعض قوانین شرعی معطل باشه و قوانین وارد شده غربی حاکم باشه این نظام اسلام ای نظام اسلامی شده نمیکنه او راه ما نظام اسلامی گفته نمیکنه بیاین ببینیم که خود نظام و قوانین چه جایگاهی را را در اسلام. آیا اسلام تنها یک دین روحی است؟ یک دینی است که انسان باید شخصا متقی باشه، خیز باشه، گریه بکنه، پاک بپوشه، پاک بخوره، کمگوی باشه، ذکر الله را بکنه، دیگه به نظام، به حکومت، به نظامگری، به سیاست، به دیپلماسی به اقتصاد، به تجارت، به اخلاق، به تنظیم اجتماع به ایچ سر و کاری نداشته باشه. نه اسلام دین همه جانبه ایست برای بشر. همه ابعاد زندگی بشر احتوامی کنه. نه تنها همه ابعاد زندگی بشر احتوامی کنه هر حرکتی که از انسان صادر میشه او را در یکی از خانه های پنجگانه قالب خود میکنه. سرش حکم سابر میکنه هر حر حرکت را که یک مسلمان میکنه او از پنج حالت خالی نمیباشه یا و حرکت و تصرف و عمل فرض میباشه چی میباشه؟ فرض میباشه و کار یا او کار سنت و مستحب میباشه هر کاری که باشه هر حرکت داره که شما می یا او فرض است؟ یا او سنت مستحب است؟ یا او کار حرام است؟ ممنوع است حرام است نباید بشود سه شدنی؟ یا او کار مکروع است؟ یا او کار موباه است؟ یا فرض است؟ یا سنت مستحب است؟ یا حرام است؟ یا مکروح است، یا مباح است. از ای پنج هیچ حرکت خارج نیست. اسلام قاله رو وضع کرده د تصرفات و اعمال و کارهایی رو انسان انجام میتا یا از انسان صادر میشه هر کار که باشه ده ای یکی از پنج خانه ده ای خوده قرار میشه. دیگه ادلالات ای و این می کنه که اسلام دین همجانبه بر همه مردم و بر احتوا کردن همه ابعاد زندگی مردم است هم سیاست را در بر میگیره هم حکومت را در بر میگیره هم عبادت را در بر میگیره هم اخلاق را در بر میگیره هم تنظیم اجتماع را در بر میگیره هم عدل و قضا و قانون و فیصله را در بر میگیره هم دیپلماسی و سیاست خارجی رو در بر میگیره هم اقتصاد را در بر میگیره هم ابعاد رو در بر میگیره و تا وقتی که یک کس که دعوای مؤمن بودن و مسلمان بودن را داشته باشه تسلیم دین نشو و تسلیم وحی نشو فیصله خود را به پیش قانون الله نبره یا قانون الله را در فیصل در منازعات خود عملی و تطبیق نکنه هزارها بار نماز بخونه هزارها بار کلمه بخونه هزارها بار حج بروست الله او را مسلمان نه دی ای سخانه ای آی قران کریم است الله متعال میفرماید فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ببروردغارت قسم كانان مؤمن بشمار نمياين تا تور در اختلافات و در گیریهای خود بحکمی و داوری طلب نکند حكم و داور بینشان تو و سپس ملال و مطمئن بودن را در دل خود در قبال ای نداشته باشند و کاملا تسلیم شده به دین نگوین که باید اقتصادی نظام ما را کپیتالستی یا سرمایدارانه انتخاب میکنون یا بود سیاسی و تنظیمی ازی را کومونیشتی میگیرین یا اخلاق و رواجها و عنعنات خود را ملی و یا او عنعناتی که از ما قبل اسلام مانده امور تدبیخ میتونی نیه مي. رب العالمین بقسم یاد میکنه خلاو ربک قسم بفروردگارت لا يؤمنون مؤمن نمیشونی مردم، مسلمان نمیشونی مردم حتى يحکیمو که تا وقت که حاکم نسازن ترا در چی حاکم نسازن؟ حکم نسازن ترا فیسل کننده نسازن ترا قاضی نسازن ترا در چی؟ فی ما شجر بینهم در اون منازعات و مشاجرات که بین اینها به میان میاد نهی که در عبادت نهی که در تقوا نهی که در مساله توحید نهی که در مساله حج روزه حلال و حرام نه در اون منازعات و مشاجرات که در زندگی روزمره اینها به میان میاد در او فیساله توره قبول نکنن یعنی در تنظیم زندگی مادی و قانونی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و فکری و همه جانبه توره حاکم نسازن قسم به پروردگارد که این مردم مسلمان نمیشن فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکیمو که فیما شجر بینهم خب تنها حاکم گردانیدن و قبول فیساله هم نی بلکه دوتا مرحله دیگه هم مانده ثمه لا یجدو فی انفسهم بعد ذی که فیصله بکنی در ما درمیان اینها هیچ ملال هیچ تشویش هیچ ناپسندی دغه فیصله تو در دل نداشته باشند اگر بگوین که خیر سوالی کار شده قبول میکنین دغه چطورش میکنین چور دغه کار است به میم کافر نش مثلا دو تا هستند بین خود مناظره مشاجره دارند بیشی حاکم مسلم بیشی قاضی مسلمان میرن و طبق حکم الله بینشون فیسلا میکنه باز یکی از اینها میگی چطور شده از کسی پرسانش میکنه چطور شد فیسلایتان کد ولا یک چیزی کرد گفت یک چیزی چطور کنی مجبور دیگه قبولش کنی نمیشدی چاره نیست بنایم کافر میشه چرا؟ الله میفرمایه لا باز نمیابند در دلهای خود، در نفسهای خود، حرجن، هیچ حرج، هیچ تنگیه، هیچ نارضایتیه شما نمیابند در نفسیم حرجن مما قضایت از این فیسلی که تو در او قضا کردید، در او حکم سادر کردید اگر نارضایتی هم در دل داشت بازم مسلمان نمیشن، مسلمان نمیمانه اگر بگید یک کار شد دیده چطورش میتونی، قبولش نیکنم چاره نیست، بازم کافر میشه، با کافر می کافر میشه ویسلم تسلیما همه زمام امور زندگی خود را، همه هوا و حواس خود را، همه خواسته های خود را تسلیم بد دینی الله کنن، به تسلیمیه مکمل، به شکل مکمل تسلیم که در این ما هیچ فرمایش ندارم در این مورد تور که الله میگه امور قبول دارم، هیچ فرمایش از خود ندارم هیچ استثنایی برای خود نمیخواد میبینید در اینجا الله تعالی از کسی ایمان را نفیه میکنه که اسلام را در مشاجرات که بین اینها به میان میآید حاکم نمیشه یعنی کسی که اسلام را حاکم نمیکنه که قانونش اسلامی نیست صد بار مردم رو به حجر روان کنه هزارها محراب مسجد درست کنند، نظام حال اسلامی نمیشه و آدم مسلمان نمیشه تا وقتی که حکومت الله را، حاکمیت دین الله را تنظیم که الله او را برای منظم بودن زندگی بشریت تعیین کرده، او را قبول نکنه و از طیب قلب قبول نکنه، به خوشدلی قبول نکنه، مردم مسلمان نمیشد. مثلا مسئلهی نهایت خطرناک است. اسلام حاکم بودن قرآن را، حاکم بودن طریقه رسول الله را میار صحت اسلام قرار میتونه. مسلمان چه وقت مسلمان شده میتونه؟ که قرآن و سنت را، احکام شریعت را، میار بر زندگی خود دری فیصله خود قبول کنه اگر انچونی نکونې مسلمان نمېمانه مسلمان نمېباش الله متعال مې فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم هیڅ مردوزن مؤمني کې در کاري کې الله و پیغمبرش داوری کرده باشه در او فیصله کرده باشه او مقرر کرده باشه اختیاری از خود ندارد هر فیسله را که الله کرده هر حکم را که الله صادر کرده هر طریقه را که رسول الله گذاشته حکم و فیسله را کرده قانون را گذاشته در او از خود ایچ اختیار نداره این قسمت ش دارم و این قسمت ش واسه قبول ندارم ما زیت دارم پارلمان ش واسه طبق قوانین غربی جور میکنه حاجه قبول دارم اقتصاد را واسه کپیتالیسم جور میکنه استلاوه ترجمه و تفسیر را در رادیو اجازه میتون لیکن نظام اقتصادی را سودی جور میکنه معامله سودی رو جواز میده آیات تقوا و آیات روزرخ قبول دارم آیات جهاد را من نمی کنم و کسی که جهاد میکنه او را ترور نمی کنم در زندان میاندازم دست پایش را بسته میکنم بمبارش میکنم کسی که با مؤمن دوستی میکنه او را قبول دارم لیکن کسی که با کافر دشمنی میکنه او را میکشون چرا با کافر دشمنی میکنن چرا کافر را دوست نمی اي اختيار رانا دارا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة نا يك مرد مؤمن رأي اجازه هس نا يك زن مؤمن رأي اجازه هس هيتش كس رأي اجازه نيس اذا قضى الله ورسوله وقت كي فايسلب الله ورسولش امرا در یك ان يكون لهو الخيارة كي اختيار راشت باشا من امرهم در کار خود. که بگه نه در این کار ما از خود یک چیزی اتشاره ذا کرم جمعی جویم. این قسمت از نظام اسلامی این قسمت دیگیشه باز خود یک غور فکر می کنیم. اکثریت مردم را پرسان می کنیم اکثریت که برچه اتفاق کردن باز امول قانون فکر می کنیم. امول باز قانون قبول می کنیم. من يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعَصِ کې نا فرماني الله ربكنا نا فرماني رسولش ربكنا فقد ضل ضلالا مبينا بجمراهي آشكار جمراه شده قرآن بك الله نازل فرموده تنها كتاب تلاوت وكتاب برقات وكتاب دم ودعا وكتاب اخلاق نيس هي كتاب هست که باید زندگی بشریت طبق احکامش عیار شده طو وقت کتابی الله حاکم نشو و نظام نظام اسلامی نمیباشه و قانون قانون اسلامی نمیباشه تنها یک كتاب برکات و کتاب رحمت نیست این قانون اسبرای تنظیم زندگی بشر الله میفرماید وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة وبرتو أي بيغمبار كتاب رنازل كاردين بهم راه حق يعني ملازم حق است هذا حق جدا نيس كموافق ومسدق كتاب هاي في شين آسماني وساهد بره حقانيت مفاهيم آنهاست مهيمنا عليه حافظ اصول مسائل آنهاست يعني قدم مسائل از طرف الله قدام احكام از طرف الله به امم ارسال شده بود حاصل اونها نه خلاصه اي در بر داره كي قرآن با خود داره اي تورنيسكي قرآن او كتابهارا نسخه با همه مفاهیمش و هیچ رابطه با اونها نداره نیه خیر او کتاب ها را، مسلحت او کتاب ها را، که ضروری بود برای یومت در او کتاب ها، او را با خود آورده مفاهیمشه اصولش حفظ کرده با خود آورده و مهمنن علیه پس میان اونها بر طبق چیز داوری کن، فیصله کن که الله بر تو نازل کرده و بخاطر پیروی از امیال، میلها و آرزوهای مردم از حق و حقیقت که بر تو آمده روی مدرد یعنی مردم هر چقدر زیاد شوند هر چقدر رأی اکثریت را حاصل کنند از حق تنازل نکن امروز زندگی رک دموکراسی برای مردم و زندگی قانونی را که دموکراسی برای مردم تلقین میکنن میگه چیزی را که مردم میخواه اکثرت مردم میخواه امو حق است چیزی را که اکثریت مردم نمیخواد او حق نیست اما اسلام میگه چیزی را که الله میخواه نازل فرموده امو حق است وقتی هیچ کس قبول نمی داشت باز از حق بودنش کاسته نمیشه امو حق است مردم قبولش دارن هم حق است ندارن هم حق است اغلب قبول الاشاره مهما حصل يك نفر قبول اشاره واكثر در مقابل هذا القرار جرت بازم حق چون حق بودن در اسلام رابطه به حکم اکثریت نظره حق بودن در اسلام نازل شدن نازل بودن از طرف الله است عزو امدان طرف رسول الله است صحت نسبتش بالله بأ وصحت نسبتش برسول الله برای هر ملت از شما راهی و برنامه ی منهاج و شریعت جهت احکام بیان احکام قرار داده در یاه شما میبینین الله متعال فرمای و انزلنا الیک الكتاب بالحق کتاب بر حق بر کو نازل کرده مصدقا لما بین یدیه من الكتاب کتاب های کی گذشته تورات و زبور و انجیل احکام اونهارا، مسالح اونهارا، اصول اونهارا، در باخود آور باده. فحكم باینهم، حکم کو، فیسل کو، حکومت بران، قزا کو، عدل حاکم کو باین مردم، تبقی چی؟ بما انزل الله، تبقی بر اساس او حکم که الله نازل کرده. نيكي أكسرت ورقب الدارة نيكي رسم ورواج وعن آناس نيكي من المتحد أميرة حكم كاردة نيكي شراء أمنيت أميرة حكم كاردة نيكي جامعي جهاني إلى توسية كاردة بما أنزل الله تبقي أوه حكمك الله نازل كاردة ولا تتبع أهوأهم وطيروي خواهشات نارنا كور هر چقدر مردم یک کار باطل را بخواهند اگر به میلیون ها مردم یک کار باطل را رای به تنفیذ جایز شود روا شود و یک فرد بگوی کمی اینا رواست و یا یک فرد هم نگوید تنها امو دلیل ناطق بر روا بودن نمی کار باشد او کار روان نمیشد نباید مردم طبعیتی رای اکثریت را, را بگوید وشت هوا و هواس ولا ولا تتبع أهواءهم عما عم جاءك من الحق فايروى ما كن از آرزوها و ميلها ينها و ميلنكو ازو حكم كي برتو نازل شده بطرف آرزوها و ميلها و خواهشات انا باري هار امتي از شما اك شرياتو اك خانوني معين آمد طاعة أزكيب شوا بالإسلام فرمان أزكير عند الشوا حكومة أزكيب شوا فيس لركيبكنا يا أيها الذين آمان أي مؤمنون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اطاعة الله ربكم وإطاعة رسول الله ربك. و اطاعت اتعاطي... اول الامر را بکنین که از شما هن. از دین شما هن. نا اطاعت اتعاطي... اونهای را که از دین شما نیستن. نا اطاعت ملل متحد. نا اطاعت جامعی جهانی. نا اطاعت حقوق بشر. نا اطاعت حقوق زن. نا اطاعت پارلمان اروپایی. اطاعت الله را بکنین. فامتنازعتم في شيء اجر منازعه واختلاف ومشاجره پیدا شود بین شما در کدام چیز فردوه الى الله راجع كونن مساله خود را برای فیصله بکی با الله بکتاب الله والرسول بالرسول وبعد ذراهنات الرسول بسنته الرسول بطريقه الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر اجر شما ايمان دارين بر الله وبروزي آخره اجر ايمان دارين ايه كار ربو كنين اجر ايه كار رنمي كنين شما ايمان ندارين دعوية دعوية دروغة دعويت ذلك خير وأحسن تأويله اللهم تعالى مفرماه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ما نازل كردين برايت كتابرا برحق لتحكم بين الناس كحكومت بكنتو بين مردم حاكم بسازي الكتابرا بين مردم فيسالة تبقى مي كتاب باشا تبقى مي وحي باشه فحكم لتحكم بين الناس كي بين مردم بما أراك الله طبق أو الله بتو نشانده دوره ولا تكن للخائنين خصيمان ومدافع خائنان ما باش آيات زيادة است كي نظريه حاكميت را نظريه قانون گزاري را اصل قانونگزاری و تشریع را حق انحصاری الله می ساله بیان می ده حق تشریع این حقی هست بشر در ایچ دخل نباید داشته باشه امروز قانون را که بنامه قانون اساسی و یا قوانین دیگر را که بنامه جزایی و قضان قوانین مدنی و قانون مطبوعات و قوانین تجارت و قانون بانکداری و قانون و پیمان های اسکری و نظامی و استراتیجیک و عمليتی را کشورهای دیگر رعایت میکنن آیا طبق گفته های الله و طبق شریعت رسول الله است؟ اگر باشن این نظام اسلامی اگر طبق قوانین الله، طبق نظام الله، طبق حکم الله، طبق حکم رسول الله نباشه این نظام نظام اسلامی نیست قانون قانون اسلامی نیست تفاصیلشو بعد میگیم که اگر یک قانون در مجموع صد ماده داشته باشه یک ماده ازی غیر اسلامی باشه و 99 دنو مادهش اسلامی باشه بخاطر امین یک ماده ناسلامیش نا همه قانون نا اسلامی میشه چون اسلام پیوند کاری رو نمیپذیره اسلام یک دین کامل است برای هر بود زندگی از خود احکام رو داره اگر یک مادهش نایسلامی باشه لیکن ام یک مادهش جز امی قانون باشه جز لاینفکش باشه بخاطر امی یک ماده تمام قانون لایسلامی باشه مواد قانون اصاسی را سرش سر هر کدامش علا حیده در روشنی آیات و حادیث و غفتهای علما اسلام سرش تبصیره می کنیم انشاءالله و می بینیم که در این قانون چقدر کفر را چقدر گمراهی را چقدر قوانون غربی را در یک لباس، در یک شیوه و طریقه، در یک پوشش الفاظ افغانی جای دادن این را بعدها میبینید جایگاه تقنین در اسلام یک جایگاه خاشیوی نیست که در حاشیه قرار باشتا مطنی یک چیز دیگر باشه نیست این اصل از اصول عقیده است کسی که حکم الله را قبول نکنه هزار حج بکنه هزار نماز بخوان هزار بار روزه بگیرن لیکن حاکمیت الله را نامپذیرره قانونی الله را نامپذیرره قانون الله ناممانه اینجا حاکم شود او نه شخص مسلمان شده میتونه نه نزار مسلمان شده می نه قانون قانون اسلامی شده میکن. دیگه مسئله تقنین و تشرية مسئله عقيب است مسئله اصلی ایمان است مسئله حاشیوی نیست. دیغ مسالای این است که ی حایسته استحبابی را داشته باشه که اگر شود خوب اگر نشود خیر است و نماز تنها با خواندن آدم مسلمان نمیشه تنها با کلمه خواندن مسلمان نمیشه تا وقتی که معنای کلمه را هم قبول نبرسته باشه لا اله الا الله محمد رسول الله جمله اول شاکی میبینین؟ دو جوز داره لا الهه نفی از اول اول نفی از لا الهه هیچ اله دیگری را قبول ندارم هیچ قانون اله دیگری را قبول نداره هیچ اله دیگری را بحیث حاکم برای خود قبول ندارم همه ای آلههی را که بشر برای خود تراشیده خواهی و بط باشه و هیوان باشه و نظام و قانون باشه و اصول وزعه کرده باشه حکومت باشه ارزش های فکری و معنوی و اخلاقی دیگر باشه که مطابق حکم الله نباشه او رنه تیمه لا اله الا الله بعض علماء علماء یقیده نگه لا حاکم الا الله بحیث حاکم قبول نمی کنون مگر يك اله حق اول نفيس. نفي اس بعد باطل بعدش اثبات حق اس ولا ما ميجي اول تخذي اس باس تحلي اول, أول نفس از الهو تسورات و نزريات بندارهاي باطلة فاق ميكوني بعد ازو عقائد حق ره قبول ميكوني و دفاع ميكوني بيكي اقاید باطله هم باشه و قاید حق هم باشه و هر دو کنار هم یک جا برون چیزی از دموکراسی باشه چیزی از اسلام باشه چیزی از سیکولارزم باشه چیزی از تقوی و از ایمان باشه نی ای این مسلمانی شده نمیتونه لا اله نفی میکنی آلهه دیگری ره از بین میبری آلهه دیگر نفی کردن یعنی از بین بردن قبول نکردن زیر پا کردن بر علیش بعدش الا الله اثبات اله حق محمد رسول الله محمد فرستاده الله رسول الله پیامبر الله کسی اسکی پیام الله رو به ما آورده و زندگی اگر این معنی ای کلمه را کسی قبول نکنه و تنها اکتفاب لا اله الله بکنه این مسلمان صحیح نیست این ای ایمان ایمان درست نیست امی کلمه خاندن امی یک جمله یا دو جمله خاندن بر ابو جهل برای کفار دیگر برای ابو لحب سخت بود تلفز کردن امی حالة ای هم میتانستن در حال که این کلمه عربي بود و خودشان هم عرب بودن لیکن اونها میدانستن که این کلمه از خ ای کلمه از خود مطالب داره ای کلمه از خود برنامه و شریعت و نظام و حکومت داره ای کلمه از من می خواهد که تمام زندگی سابقه خود را کنسل کنم هیچ چیزی از تصورات باطله سابقه در ذهن من وجود نداشته باشه در کنار مفاهیم که رسول الله را می جد خاطر اونها از تاریخ خود دیر نمی شدن. از تصورات سابقه خود نمی گذشتن ولی خاطر نمی گفتن آنی پلمه. نیه کلمه بسیار دشوار بخاندنش برشان یا يا یاد نداشتن. یا زبانشان نمی گشت. یا مانایشان نمی فامیدن. نه اونها می که یک دفعه اگر گفتیم لا اله الا الله دیگه تمام زندگی سابقه تمام قوانین و نظریات و تصورات که مخالف گفته های اله هست او را باید کنسل کن. و آماده نبودند. امروز منافقت و یک شکل گلگرش در ذهن مسلمانها و در ذهن ذهنیت اجتماعی قوامه مسلمانها جای گرد. هم لا اله الا الله، هم اله حق، هم اله باطل هردود یک جا، یک اکسان، در یک وقت، در یک نظام بچرد. شما قانون اساسی را انشالله می بینید، بالای هر, هر بندش، بالای هر مادهش تفسیر می کنید. در هر جایی که ذکر اسلام را کرده در اونجا میگفت طبق شریعت اسلام و قوانین دیگر و ارزش های بین الملالی یکی یه قانون را که ساخته ایران برطان بگم در درس بعدی انشالله یه قانون افغان ها نساخته یه قانون را نو نفر از امریکایی ها ساخته و طبق فرمایش ایران کارپوریشن او مرقز تخطیقاتی که برای حکومت امریکا و بزارت برنامه و پالیسی می سازه من نامه‌هایش براتون آوردیم من خود امو برنامه رو در انگلیسی براتون آوردیم که برنامه را اونها به عنوان اسلام دموکراسی اند نیو افغانستان اسلام و دموکراسی در قانون اساسی جدید افغانستان که چه رقم اسلام و دموکراسی هر دو رو یک جا بیارن یک چیز به نام فقط به نام ظاهرا از اسلام دیگه عملا دموقراسی دو تسریح میکن امینو نفر امریکایی ها که بعد در هر جایی که ذکر از اسلام میشه در اونجا قوانین دیگر و ارزش های بین الملالی و قوانین حقوق بشر ایم امراش ذکر شوه تا مجال مطلق نمانه برای اسلام که مردم باز این رو میگه به نفع اسلام و به نفع جهاد و مجاهدین و به نفع قصایی که وزیعت کنونی رو در افانستان قبول ندارن بنه خود تعبیر نکونند تفسیر نکونند ما امو نوتره مکمل امو دره مکمل در خدمت شما اسلام انده ما کو سین نیو کنستټیوشن اف افغانستان نو نفر امریکایی امیر تدوین کرد بس طرف رند کارپوریشن باز در روشنی ازو قانون اساسی افغانستان را بنا کرد اساسشه اونها وزاحه کردند چارچوبه شو اونا وضع کردن خطوط اساسی شو اونا وضع کردن دیگه ای که معنای لا اله لالله شده میتوند که هم گفته الله قبول شد و هم گفته امریکایی ها هم نظام ها اسلام باشه مسلمان باشه و هم هدف اصلی قانون اساسی تحقق دموکراسی در افغانستان باشه در دموکراسی دموکراسی خودش چی هست؟ Of the people by the people for the people حکومت مردم از طرف مردم برای مردم جایگاه اله و دین و شرایط و واحد در اینجا کجاست اصلا وجود نداره باز اسلام از تسلیم گرفته شده که تماماً هر چیز چیزره به الله هو میگذاریم ه است استثنا و فرمایش رو از خود داشتن می باشه در حالا که دموکراسی مرجش اقل بشر، خواهش های بشر رأی اکثریت است و در اسلام مرجع و مصدرش الله هست هر دو باهم یک جوه نمیرن چقدر این نظام را ای قانون اصاسی را این مردم را ای اینها فریب دادن و چقدر این قانون اصاسی را به یک شیوه و به یک شکل تدوین کردن او به مردم در الفاظ تقدیم کردن که اصل فحوا و اصل مقصدش مردم درک نکنن شما که محاصلین فاقلتای شریعت هستین، شما که محاصلین فاقلتاهای طب و انجنری هستین، شما که محاصلین فاقلتاهای حقوق و قانون وغیره هستین، همی مسائل را باید سعید بفهمین و بمردم سعید بفهمانن. مسئلی حاکمیت، مسئلی تشریح و قانون، و مسئلی حاشیوی، مسئلی استحبابی در اسلام نیست. جایگاه جای اصلی است. و نشعت ازم لا اله الا الله میکنم. لا اله الا الله هیچ اله بغیر از اله حق نیست. هیچ قانون بغیر از قانون ایم ایله را قبول ندارم. هیچ فرمان بغیر از فرمان ای اله را قبول ندارم. هیچ خاطرداری بغیر از خاطرداری ای اله را نمیکنم. نه از مل المتحد پارلمان اروپایی را، نه از شورای امنیت را، نه از جامعه جهانی را، نه از عنعنات و رواجه ها و تقالید مردم را تم ها چیز را که اللهم افره امور قبول میکنه امی معنی لا اله ایلالله و اصلا این معنی لا ایلا اله ایلالله شده نمیتونه که هم دموکراسی را میکنه هم اسلام را باز امو نفی و اثبات کجا را دیخو اردوش ثابت شد هم دموكراسي ثابت شوه هم إسلام ثابت شوه هم فرمان إله حق عملي شوه و هم فرمان آلهي باطلة عملي شوه هكذا كيف يشه در مقدمه قانون أساسي شما ميخانم كي حدف أزي تحقوق دموكراسي أسه باز دموكراسي رمو شما أز خود يعني تعريف براش نميتراشي تعريف اينها رمياري اينها چيرا دموكراسي ميباني؟ در دموکراسی مصدر فیصله و تشریه چی است؟ اگر مصدر فیصله او تشریه در او بشر باشه، عقل انسان ها باشه، رای اکثریت باشه، پس جای الله در او کجا است؟ باز او، او ماده را که در اونجا نوشتن که هیچ قانون در افغانستان خلاف قانون شریعت یا خلاف اسلام ساخته نمیشه، او باز دیگه مانایش چی شده؟ فقط یک، یک چیز نمائیشی است یک ماکیاجی است اگه لبسیری نیست برای ای, اصاسی؟ ای قانون اصاسی تا که مردم فریب بتن که آه این فلان قانونیست نوشته شده پیش از او در مقدمه که جزی اصلی قانون اصاسی است میگه که تحقاق دموقراسی بعدشان میگه تحقاق دموقراسی عملی نمودن حقوق بشر پاسداری از حقوق بشر قوانین بین المللی آیا قوانین بین المللی و قوانین اسلامی یکی هستند اگر بانشان تباین و فرق وجود داشته باشه فس کدامش قبول شوه این مسعید هم و شما یک کمی دغور یک کمی بتعمق یک کمی و به توجه باید بفهمیم و به محسلین، به جوانا، به علما به اهل مهمبر و محراب به اهل فکر و قلم به اهل خطابه و مناقشه و مناظره بسانیم، بفهمانیم این قانون اصلا قانون اسلامی نیست دلائلشن به تفصیل در درسهای بعدی انشاءالله خدمت شما عرض می کنم ای که چرا امیرخم قانون را که امریکایی ها آمدن ساختن بخاطر ازی طور که خدمت شما عرض کردم مستعمرین و اشغالگران که هر کشور را اشغال می کنن اونها از یک چیز بیم داشتن می باشن از یک چیز می ترسن او چیست قیام مقاومت مردم برای که مقاومت از مقاومت مردم جلوگیری کرده باشن و مردم را از از خیستن در مقابل اینها و جنگیدن در مقابل اینها منع کرده باشند اینها فوراً قارنگزاری میکنن فلان کار جایز فلان نجایز فلان قانونی فلان غیر قانونی فلان کار و فلان شیوه بشهار خلاف ازی خلاف قانون است و کسی که خلاف قانون کار را میکنه او مجرم است و مجرم سزایش اعدام است، سزایش بندی کردن سزایش تبعید است، سزایش جزایش فلان فلان فلان است اینها دامن قوانین را میگیرند کوشش میکنند امو کشوری را، امو ولسی را، امو مردمی را که اینها اشغال کردن او را از نگاه قوانین تسخیر کنند دست پایشان را ببندن حرکتشان را اینها تنظیم کنند معیارهاشان اینها تعیین کنند که به اونها آزادی داده شود که هر معیاری که خود میخوان بهمو عمل بکنه چون اگر به اونها آزادی داده شود اونها آزادی خود را میخوان اونها مقاومت میکنند اونها دین خود را میخوان شریعت خود را میخوان اینها نمیخوان که شریعت باشه نمیخوان مردم یک انگیزه آزادمنشانه داشته باشند برای زندگی خود. یک طریقه داشته باشند که در او رضا الله هدف اصلی باشند. دیگه قوانین را به امی خاطر اینها می تا اولسها را، قومها را، مردم را در قالب قوانینی که خود میریزن خود جور می کنند، تنظیم کنند. و وقتی که مردم را داری قوانین تنظیم کردند باز سوق ای مردم، اراده کردن این مردم برشان آسان میشه و هدف دومشانی است که از طریق امی قوانین باز اینها در اموال ای کشور، در منابع ای کشور، در زندگی مردم کشور، در روا و ناروای کشور حق تصرف را به خود میتن. اگر او باد اقتصادی باشه، اگر او باد قانونی باشه، اگر او باد اخلاقی باشه، اگر او باد سیاسی باشه، اگر او باد نظامگری و امنیت و استخبارات و غیره باشه، دایی به خود حق میتن که این ملت را امور خم تنظیم کنن. و کسی که از این قید و بند باز، اور فرا میگذاره بیرون میبره پوره تعدیب میکنن میزنه تو مخالفت قانون سره شما میبینین اداره کی امروز در افغانستان قائم شده او کسانی کی در اصل اداره استن و کسانی خود در مجتمع مدنی و مجتمع مدنی میگن زیار هر در هر گپتهش در هر د یک دو جمله و کلمه میگن تطبیق قوانین تطبیق قوانین قانون مندی قانون مندی تطبیق قوانین دیموکراسي تطبیق قوانین جامعې جهانی حقوق بشر معیارهای جهانی هیڅ کلمه یا هیڅ از وحی شونېده نه نشي هیڅ کلمه از قران شونېده نه نشي هیڅ کلمه از احادیث شونېده نه نشي هیڅ کلمه از فهم سلف امت شونېده نه نشي هیڅ کلمه از فقه شونېده نه نشي هیڅ حواله از کوم کتاب شرعی داده نه چون اینها تحکم در زندگی مردم، تحکم در منابع سرزمین و زیرزمین این مردم، تحکم در ارتش و نظام و حکومت این مردم را از طریق قوانین حاصل می کنند. می میکن در زندگی مردم تحکمی داشته باشند. زندگی مردم را خود در چنگال خود بگیرند. باید قانون گذاری بکنند. قانون چیزی بسیار خطرناک است چیزی بسیار مهمی است کشور های لکنین ها در او کردن باز دوباره به طرف اسلام نگشتهند هرچند که آزاد هم شدن هرچند که از استعمار انگلیسی ها از استعمار فرانسوی ها از استعمار ایطالوی ها از استعمار اسفانوی ها از استعمار اروپایی ها و روس ها آزاد شدن لیکن اسلامی نشد کشورهای آسیای میانند از روزها آزاد شدن یا نشدن مردمش مسلمان هستن یا نیستن هستن بودن و هستن تانوز لیکن نظامهایشان اسلامی شد اسلام ها... نظامهایشان اسلامی نشد چون روزها رفتن قوانین خود بجا گذاشتن همون قوانین تحکم میکنه در زندگی مردم در اموالشان، در سیاستهایشان، در اخلاقشان در سیاست و نظامشان در روا و ناروایشان در روابطشان با جهان در میارهای زندگیشان همون قوانین حاکم است بنا این روزخواب تا آنوز همونجا حاکم هستند به اکناب کشور هنگ، کشور پاکستان، کشورهای عربی، کشورهای افریفایی از استعمار انگلیس و فرانسه و استعمار ایتالیا و کشورهای دیگر آزاد شدن لیکن تا نظام ها اسلامی نشد ده ها سال گذاشت شست سال، افتاد سال چاست 5 پنج سال 50 سال گذشت در یکی از این ها هم نظام اسلامی نام چرا اونها رفتن قوانین رو بجا گذاشت امروز که تاکید میکنن اصرار داشته میباشن به که قانون اساسی نباید باید تغییر بخوره دستاوردهای 12 ساله رو باید حفظ بکنیم این 12 ساله دستاوردهای 12 ساله شان چی است همین تغییر دادن وضعیت قانونی و میارهای زندگی مردم است اینا باید دوباره, شوه. ای باید شو دوباره با اسلام میشوه اینا باید راج شود دوباره به اسلام نه حاکم اسلام در زندگی مردم حاکم شود نباید فیصله از اسلام باشه نه باید فیصله از قرآن از احادیث باشه نه مردم به مullah و عالم و منبر و محراب و مفتی رجوع بکنن. مردم باید به با کمیسیون حقوق بشر رجوع بکنن. مردم باید به با فرمان رجوع کنند مردم باید به با وکیل رجوع کنند مردم باید به با شورا و همبستگی ملی رجوع کنند مردم باید به با نماینده حکومت رجوع کنند ساختار اجتماعی زندگی مردم رو تغییر دادن. میگن امین نباید دوباره به طرف اسلام عودت بکنن. نباید طرف اسلام دوباره اعاده شدن. بازگشت به طرف اسلام صورت ببیره. امین هدفشان از دست هاورده های 12 ساله. چیز دیگر ایره که هدف دارن چیز سو میره چرا قوانین تبدیل میکنن؟ است ای که اینها از طریق امیقوانین و تأثیرات امیقوانین از ذهن مسلمانها ای را فراموش میکنه ای را میکش از ذہن مسلمانها که مسلمانها یک اومت استن و غربی ها یک اومت دیگر مسلمانها یک تمدین دارن و اونها یک تمدین دیگر مسلمانها یک ملت استن و اونها ملت دیگری استن مسلمانها برای حل و حرمت حرام بودن و حلال بودن اشیاه آ بودن ونارا بودن کارها و ااشاء بد بودن و بودن افعال و ااشاء معارهایی از خود دارن و اونها از خود دارن امیر از ذهن مصمان ها فراموش میکنن چرا چطور فراموش میکن ؟ قانون را به میان میارن که من بش است من بش آمریکایی است من بش است من روسی است باز زندگی مردم آهسته آهسته استپ که هم قوانین ایال میشن یک وقت که مردم به طرف خود میبینه میبینن که بین انها و اروپایی ها هیچ فرق نیست. در لباس فرق نیست. در شکل و صورت فرق نیست. در حل و حرمت فرق نیست. در تحاکم فرق نیست. در اسکری و امنیت فرق نیست. در قرار گرفتن ملیون ها اسکر در پیمان های اسکری و نظامی با اروپایی ها هیچ فرق نیست. مسلمان ها کسی در ناتو شامل میشن، کسی در وارسا شامل میشه. هیچ مشکلی نیست، عضو ناتو میشه. از طریق امی قوانین، از مسلمان هایی را فراموش میکنن، ذهنشان میکشه ای که مسلمان ها یک امت هستن، اونها یک امت دیگری هستند. بلکه عملا اینها را تور عیار میسازن، که احساس دوگانگی را فراموش کنن، و خود را با اروپایی ها یک فکر بکنن و باز هر کسی که امون قوانین اروپایی را در زندگی خود خوبتر و بیشتر و وسیتر تطبیق بکنن اونها مترقی باشن و کسایی که ازی دور باشن از تطبیق قوانین غربی در زندگی سیاسی و اجتماعی و انفرادیشان اونها مرتجع باشن، اونها تنگ نظر باشن، اونها عقب مانده باشن، اونها تشدد گراه باشن بنیاد گراه باشن فندمنتلست باشن چرا؟ به خاطر ازی که از, از های غربی دور هستند قوانین غربی را در زندگی خود قبول ندارن و اهداف دیگری هم دارن از تدبیق قوانین او را انشاءالله در درس بعدی خدمت شما عرض می کنم باز ایرم می بینیم که قوانین را که اینها در کشورها اسلامی در زندگی مردم سر مردم تحمل میکنن پشتوونه را بر ازی قوانین از کجا پیدا میکنن یا به عبارای دیگر پیر چطور در تاییدی قانون استعمال میکنن حضرت را چطور در تایید و تقنین و عملی کردن قانون استعمال میکنند شیخ و پروپیسر و عالم و استاد و شیخ الحدیث و مولوی و ملک و آخون صاحب اینها را, این را چطور در تعیید یعنی قوانین استعمال می کنن خانون خود می سازن مهر امضای از اینا را بالاش می چسپانند حضرت صاحب که تایید کرد دیگه چی مان پیر صاحب که قبول کرد دیگه چی مان شیخ الحدیث صاحب که امروی شان است دیگه چی مان هیچ مشکل نیست چرا؟ به خاطر ازی که شیخ الحدیث صاحبی را قبول کرده. قانون اساسی امروزه افغانستان و امریکایی ها ساختن امزار از شهرانی گرفتن می که, اس، اس، که شهرانی برشان قانون اساسی درست بر. نعمت الله شهرانی شایخ است. عالم است. مولانی است. ازهری است. استاز است. معاون یک تنظیم جهادی در حال که شهرانی به هیچ دخل و غرضی نیسته خطوط اساسی همین قانون را رن کارپوریشن محسطه تحقیقاتی امریکا و نو مستشرق و نوع متخصص علوم قانونی و سیاسی و روانی اونها وضع کردن نومایشان در درس بعدی انشاءالا خدمت شمارد میکنم خاینان چطور در تعیید همین قوانین سهم میگیرن و چی غدر را مرتکب میشن در حق امت خود، در حق مردم خود، در حق کشور خود در حق مستقبل جوان های خود چی غدر را مرتکب میشن و چی تا عمل باید با اینها بشون به چی دیدهی با, دیده با اینها نگریسته شون اینهایی که امروز باریش و سالا و لونگی و چپن و عبا و قبا در پارلمان میعین میشینن و در ولوسی جرگ میشینن در سنا میشینن و امظاهار بالای قوانین غربی میکنن و پیمانها تایید میکنن با غربی ها اینها حکمشان چیست و بعد از او باز میبینیم بینیم که امریکایی ها و غربی ها با خود مشاورین خود را و چی پیمانه مشاورین خود را با خود آوردن و در ادارات دولتی در ادارات غیر دولتی قرار دادن تا امی قوانین را که آوردن با خود یا در اینجا ایجاد کردن امی تطبیق کنن و از تطبیقش نگرانی بکنن ای را که کجا تدبیق میشه، کجا نمیشه؟ در کجا مشکلات است، مشکلات چطور حل شود؟ کجا فشار استعمال شود، کجا رشوه استعمال شود؟ کجا زهنسازی شود، کجا فشار وارد شود؟ کجا بنباری شود و کجا به مردم مناسب تقدیم شود؟ امی مشاورین را که امروز در ادارات دولتی تعیین کردن اینها در تدبیق امی قوانین و در تغییر زندگی تقنینی و عدلی و قضایی مردم چه نقش و رولی را دارند و چه تعامل با اینها باید بشود اینها خطرناکتر از جنرال های اسکری هستند قلم های اینها تأثیرش خطرناکتر از میله های توپ های تانک هایشان است بعدش بازیره می خوانیم که قوانین اگر یک قسمتش اسلامی باشه یک قسمتش نایسلامی آیا امیر علما اسلام اسلامی گفتن یا نایسلامی گفتن میشه که بخاطر از این که در مقانون چند کلمه از اسلام است یا در ذکر نام اسلام است یا در آیت و حدیث است بخاطر بودن امو آیه و حدیث ای قانون اسلامی فکر بکنیم علماء اسلام در ای باره چی میگن؟ مفسرین قرآن در ای باره چی میگه؟ علماء احادیث علماء شرع در ای باره چی میگن؟ بعد از او باز انشاءالله حکم امی قوانین اساسی امروزه که در افغانستان و یا در عالم اسلام است حکم چی بیان کرده چی میگن که قوانین اسلامی هستن یا کفری هستن یا چطور و بعد از او باز میبینیم که قانون افغانستان را کی وضع کرده و چطور وضع کرده و کجاهایش کفر سریح و کجاهایش کفر زمنی را با خود داره اید انشاءالله با لی هر معادهش تبصیره یا لاحیدهی میکنیم امروز با امین امراضه است سبحانکاللہم و بحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله فيراك